افسونه افسانه افسانه ها، حکایت ها و داستان های شیرین و دلنشینی هستند که نسل به نسل و سینه به سینه روایت شدند تا به دست ما رسیدند. داستان هایی که در دل هر کدامشان پند و اندرز و آموزه‌ای برای زندگی نهفته است. افسانه های هر سرزمین بخشی از میراث فرهنگی آن سرزمین محسوب می شوند که نشان از آیین و فرهنگ های بومی و ملی آن سرزمین را دارند در این برنامه میخواهیم یکی از افسانه‌های کشور یونان را برایتان روایت کنیم به نام آشیل. اگر همچنان ما را با برنامه افسانه افسانه همراهی می‌کنید، شما را به شنیدن افسانه آشیل دعوت میکنیم در سرزمین یونان پسری متولد شد به نام آشیل آشیل پسر پولیوس پهلوان یونانی بود مادرش هم تتیس نام داشت که از رب و نوهای دریا و اله فناناپذیر فنانا آب بود تتیس هفت فرزند به دنیا آورد که جز آشیل همه از دنیا رفتن. وقتی آشیل متولد شد، مادرش تتیس اونو از پاشنه گرفت و زیر آب سیاه برد و تمام تنش رو به آب اون رودخونه آغشته کرد و همه پیکرش جز پاشنه پاش رو این تن شدن. آشیل با آموختن فنون نظامی بزرگ شد تا اینکه یه روز هکتور و پاریس که از شهزاده تروعا بودن به یونان میان. پاریس در مهمونی شاه میلاس دلباخته دختری به نام هلن میشه روز بعد هلن و پاریس به تراغ فرار میکنن آگامنون پادشاه یونانم به بهانه برگردوندن هلن به تراغ حمله میکنه خوب اصیل خوبه چشم از هدف بر ندار ایستاده ایست داده پاها <تصفيق> <تصفيق> آشیل بست نیست <تصفيق> <تصفيق> آه اودیسه توی انقدر قرد در تمرین شمشیربازی بازی بودی که متوجه نشدیم این ساعت کنار ایستادم دادم احلوان سپاهی یونان شدن ساده نیست اودیسه میدونم، ولی به نظرم هم لازم نیست خودتو به زحمت بندازی تو در میدان نبرد به اندازه کافی خودتو نشون دادی بله اما وقتی جنگ تموم میشه. نباید به بدنم اجازه استراحت بدن من باید همیشه ورزیده و با آماده باشم ودیسه نگران نباش به زودی این بدن در میدان نبرد ورزیده تر میشه منظور چیه؟ منظورم اینه که سرورم آگا ممنون خواسته در نبرد تروا تو هم کنارش باشی خدای من ها تو بهتر از هر کسی میدونی که من با آگاممنون ممنون میونه خوبی ندارم دلم نمیخواد در هیچ نبردی همراهش باشه قبلنم گفتی و سرورم آگام امنونم شنیده اما این بار این منم که اومدم از, از خواهش کنم در این نبرد آگام ممنون رو همراهی کنی تو دو دوست سمیمی منی و خوب میدونی که خیلی دوست دارم و حاضرم به خاطر دیگتنه با دنیا بجن اما لطفا ازم نه. خواهش میکنم آشل من به آگاممنون قول دادم که بدون تو به تروها نمیرم فقط روی دوستیمون حساب کردم خواهش میکنم آشه آگاممنون پادشاه یونان یونانه اما با رفتارش کاری میکنه که نتونم بهش احترام بذارم با تو موافقم منم خیلی وقتا از رفتار آقا ممنون نسابنی اما در نبرد با سپاه و باید این کینای شخصی رو کنار بذاریم آشه تو که نمیخوای سپاه یونان در مقابل سپاه ترواه شکست بخورن و با شکست به یونان برگردن. میخوای؟ چیه؟ راضی به شکست یونانی ها نه پس به عنوان سردار سپاه یونان با ما به تو روها و به اونجا حمله کنیم فقط فقط به خاطر حفظ دوستی می رویدیسه اینا همیشه یادم می بینه فقط به خاطر حفظ دوستی میکنی. دیس آشیل راضی میکنه تا همراه آگاممنون به تروا حمله کنند سپاه یونان به فرماندهی آشیل حرکت میکنه و به می میرسن به محض رسیدن به تروا آشیل به همراه 50 نفر از مردان جنگیش به معبد آپلویترا حمله میکنه و معبد و به تصرف در میاره ببین ببین کوله میوس روزان خوشحال رو ببین یه سبوس هیچ چیزی بهتر و خوشایندتر از این نیست که در دل دشمن جشن می همینطوره هاشم یونان این پیروزی رو مدیون تو قدرت در نبرد با سپاه ترواس این پیروزی هدیه من به یونان میبینم که آشیل خیلی خوشحال از این پیروزیه ه هیچ چیز نمیتونه این همه شادی رو از من و سپاه یونان بگیر همینطوره هاشم منم اومدم تا شادیتونو تکمیل کنم چی شده اودیسه فکرش هم نمی‌کنی چی شده کل نیاست نکنه می‌خوای بگی که پاریس حاضر شده هلنو به ما تحویل بده نه خبری که می‌خوام بگم از این هم جالب تره چی شده اودیسه اشیل تو امروز به معبد آپولو ی حمله کردی و تعداد زیادی از اهالی اونجا رو به سرعت گرفتی درست هیچ میدونستی که بریسیس دختر پادشاه تروآ و خواهر هکتورم یکی از اسرايي که امروز گروگان گرفتی. خدای من تو تو مطمئنی اودیسه شک ندارم. این دختر یه غنیمت بزرگه. میخوام اونو از نزدیک ببینم همین الان. بسیار خوب. بریم. آشیل همراه اودیسه و کلونیوس به دیدار اوسرا میره و در اونجا آشیل بریسیس رو میبینه و دلبسه اون میشه اما بریسیس با گستاخی جواب آشیل میده اون شب آگامنان آشیل رو به خاطر حمله به معبد آپولو ملامت میکنه آشیل هم که از آگامنان دل خوشی نداشت تصمیم میگیره سپاه یونان ترک کنه فردای اون روز نبرد بین سپاهیان و تروا شروع میشه و هکتور یک تنه سپاه یونانو وادار به عقب نشینی میکنه این در حالیه که آشیل سپاه یونانو ترک کرده بود آشیل آشیل سپ کن آشیل آروم باشه آشیل، داری کجا میری؟ هرم بر میگردم یونان حالا؟ حالا که ایک صور سپاه یونان و بادر به عرب نشینی کرده؟ ظاهران این خواسته یه عقا ممنونه که سپاه یونان، تار و مار و خورده بشه. بس تو ناشیل. الان وقت این عرفانیست از زور چی آدیسه؟ اکنون آمدی دنبالم که من رو راضی کنی برگردم پیشه؟ عقا ممنون عواز هم به خاطر بیروزی های پیدر پید محله آمد می دونم که آگا ممنون اشتباه کرد. نباید تو رو مطلع کرد. اما سپاه یونان الان در موقعیت خوبی نیست. اکتور سپاه یونان رو وادار و عقب نشینی کرد. این مشکل آگا ممنونه. نه من. تو پهلوان سپاه یونانی. اینو به آگا ممنون بکن آگا ممنون از من خاص بیان و تو رو به تو برگردونم. بدونه تو هیچ نبردی پیروز نمیشه. بدون تو ما در مقابل سپاه رو با شکست میخوریم ماشی. خواهش میکنم اینو درک کن. اون وقت تا بیشتر از فنا افسوس می‌کوری که چرا این شکست برای یونان و سپاه یونان رقم خورد لعنت به تو دیسته به که فزند تو آدم و وسوسه وسوسه نیست اینا حقیقته ما باید هرچه زودتر هلنو به یونان برگردونیم و سپاه تروها رو در خود تروها شکست بدیم خواهش می‌کنم آشیل نفهم به خاطر دوستیمون برگشت. خواهش می‌کنم. بسیار خواه فقط خدا کنه دوستیه با تو ارزش این همه تواضع و گذشت رو داشته باشه. ازت ممنونم. بریم که چهرهمون تسکینه. آشیل همراه اودیسه به برمیگرده در راه متوجه میشه که بریسیس از دست سپاهیان یونان فرار کرده. سپاهیان یونان اونو در نقطه گیر انداختن و با اون در حال نبرد بودن. آشیل از راه میرسه و بریسیس رو نجات میده. کاش میدونستی فرار از جنگ سپاهی یونان کار ساده نیست، جهزاده بریسیس. من دلم نمیخواد یه عمر اسیر بمونم آشیل. آه پس منو میشنسیم بهتر از آگا ممنون تو از آگا ممنون چی میدونی؟ میدونم که باوردار سپاهش بدون تو مثل یه شیر بیستره آه. برای همین تو به خودت جرعت دادی از دل سپاه فرار کنی؟ هکتور سپاه یونان و وادار به عقب نشینی کرد و همینم بهت جسارت داد که فرار کن نبودن تو به من جرعت داد فرار کنم من میخوام آزاد باشم آشیل اون شب تو معبد آپولو چیکار کار میکردی؟ من برای عبادت به محبت رفته بودم تو اون شب چرا به معبد آپولو رفته بودی؟ نمیدونم حسن چرا به تو رو آمدین و با سپاه تو رو وارد جنگ شدی؟ نمیدونم تو چجور سربازی هستی که نمیدونی؟ برای چی داری مبارزه میکنی؟ من فقط میدونم که برای جنگیدن به دنیا آمدم به ریسز. بازم قراره به سپاهیان ترو ها حمله کنیم بیشک تا شکست سپاه ترو ها در اینجا میمید لانت به تو آشی لانت به من خورده نگیر بریسیست من یه سربازم و یه سرباز در هر شرایطی باید برای دفاع از وطنش به جنگه اونم بهتر سوارمون هست بشی و هموره ما کن <تصفيق> بریسیس همراه آشیل رفت تا اینکه به سپاهیان یونان رسید سپاهیان داشتن شمشیرها را سیغل می تا فردا صبح به سپاه تروا حمله کنند. بریسیس که شرایط برای سپاه تروا نامساعد دید تصمیم گرفت هر طور شده آشیل از بین ببره به همین دلیل شب وقتی همه خواب بودن با چاقوی برندهی خودشو به آشیل رسوند تا آشیل رو به قتل برسونه اما همین که خواست چاقو رو در قلب آشیل فرو کنه آشیل از خواب بیدار شد تو چی کار بکنی من من هیچی آشیل هیچی اون اون چاقو تو دست چیکار کار میکنه؟ من میخواستم تو رو با این چاقو قتل برسونم چطور میخواستی این کارو بکنی؟ به من حق بده آشین حق بده منم سرباز وطنم باشم و از تو دفاع کنم فاکشتن من؟ آره شمشیر تو فردا آغشته به خونه صدها نفر از سربازان تروا میشه من من نمیخوام تو با سریختن خونه اون همه سرباز بشی بهت حق میدم که نگران سپاهیانتون باشی باشه اگه فکر میکنی با کشتن من با زود میرسی منو با کش من برای مرگ آمدم بزن دیگه اون چاغو رو در قلب من فرو کن قول میدم هیچ مقاومتی نکنم زود باش برسیزم چرا دستات میلرسه نمیتونم نمیتونم باشی برسیز بزن, برسیز بزن تو به خاطر دفاع از سرزمینت داری این کاره میکنی بزن نه. نه آشیل نه من،, من تو رو دوست دارم قدرت عشق به من اجازه چنین کاری نمیده نمیتونم آشیل نمیتونم از اون چاقو رو به من بده برسیس به چادرت برگرد و استراحت کن تو رو حتی اگه شکست بخوره به سربازانی مثل تو افتخار میکنه برو, برس. برو. روز نبرد بین سپاهیان یونان و سپاهیان تروعا فرا رسید. تداد زیادی از سربازان تروعا در این نبرد کشته شدند. پاریس از شنیدن این خبر عصبانی شد و تصمیم گرفت به تنهایی به جنگ با شاه میلاس بره و هر کدوم در این نبرد پیروز شدند با هلن ازدواج کنند. نبرد تن به تن بین میلاس و پاریس شروع شد. پاریس در این نبرد کم آورد و به هکتور پناه آورد و در نهایت هکتور میلاسو به قتل رسوند این خبر سپاه یونان و آشیلو سخت عصبانی کرد کی؟ کی به شاه میلاس اجازه داد با پاریس وارد جنگ بشه کلونیوس این تصمیم به اختیار خود شاه میلاس گرفته شده این یه نطفایه بزرگ برای سپاه یونانه الان داری کجا میری؟ من که نمیبینی؟ دارم به چادر میرم باید لباس رزم بخوشم؟ لباس رزم برای چی؟ برای اینکه هکتور رو به سزای عملش برسیم آتش انتقام در دلم شعله میکشه کلونی تا هکتور را نکشم آروم نمیشه. الان عصبانی هستی آشیل لطفاً کمی صبر کن بعد تصمیم بگی اگه تا یک سال دیگه صبر کنم بازم برای کشتن هکتور لباس رزم میپوشم. خودم اونا رو اینجا گذاشته بودم چرا نیستن دنبال چی میگردی؟ دنبال رباس رزمم خودم اونا روی رو این وسایل گذاشته بودم این یه نشانه است آشیل یه نشانه برای اینکه به خودت مسلط باشی به این نبرد نری بس کن کولونیوس. من آشیل اینجا یه آشیل چی شده آدیسه؟ خبر بدی دارم چی شده آدیسه؟ پاتروکلاسا چی شده؟ اون اون کشته شده. چی درمیگه ودی؟ خیلی متاسفم آشیل. میدونم که پاترکلاس سمیه تو بود اما همین چند دیگه پیش به دست هکتور کشته شد. ولی ولی چطوری؟ چطوری این اتفاق افتاد؟ پاترکلاس لباس رزماشیلو پوشید و با کل خود آشیل به میدان نبرد رفت تا انتقام خونه شاه میلاس از هکتور بگیره. هکتور به خیال اینکه آشیل به جنگ با اون رفته به میدان اومد. و بعدم با اون مبارزه کرد هکتور با شمشیر اون از پادر رو برد. وقتی کلا خود از سر پاترکولس برداشت متوجه شد کسی که با اون مبارزه کرده آشیل نبود کجا داری میری آشیل؟ دارم میرم هکتور رو به سزای عملش برسونم هیچ کس نمیتونه جلوی منو بگیره سیل صبر کن آشیل سب کن تو نباید چه زده عمل کنی آشیل خواهش میکنم آشیل که از کشته شدن دوستش پاتروکلو سخت عصبانی شده بود به جنگ با هکتور رفت و در جنگی تن به تن هکتور رو به قتل رسوند و جنازش رو سوار عربی کرد و با خودش برد شب شاه پیریام برای بردن جنازه پسرش به چادر آشیل رفت میدونم که سپاه یونان و سپاهیانت با هم در حال جنگان انجنب آشیل اما آوازه مردانگی و جوانمردی مردی شما به گوش دشمنانتونم رسیده؟ از من چی میخوای شاپریام؟ اومدم ازتون خواهش کنم جنازه پسرم رو به من بدید خید کردم برای بردن دخترت بریسیس به اینجا اومدی دخترم زنده است و در دست سرباز جوان مردی مثل تو اسیره شک ندارم در کنار تو هیچ آسیبی به اون نمیرسه اما هکتور کشته شده و من باید مراسم خاکسپاری سپاری اونو در تروا انجام بدم التماست میکنم جناب آشیل اجازه بده جنازه هکتر رو با خودم ببرم. هکتور نباید شاه میلاسو و میکشت جنگ باید و نباید حالیش نیست جناب آشیر جنگ قوانین خودشو داره درسته اما من همین قوانین سخت و خشن و فراموش میکنم و اجازه میدم جنازه یه با خودت ببری گفتم دو شیزه برسیسم بیارن تا اگه خواست اون هم همراهتون به تروها برگرده. اون از این به بد آزاده تو رو ها جوان تو رو هرگز فراموش نمی جناب آشیل سلام پدر سلام دخترم خدای من چقدر ضعیف شدی هکتور کشته شد پدر؟ میدونم دخترم منم برای بردن پیکر اون به اینجا اومدم جناب آشیل اجازه دادن پیکر هکتر رو با خودم ببرم ممنونم آشیل لازم نیست تو از این لحظه به بدازادی دوشیزه بریسیست میتونیم بای پدرت بری آشیل میترسم برسیس میترسم قوانین جنگی سرانجام انجام اینش رو به جاهای ناخوشایندی آیندی برسمه. درسته که تو برادرمو کشتی و من باید ازت متنفر باشم اما, اما نیستم آشیل متاسفم برسیس با من بیا برسیس. نمی نمیخوام بعد از برادر تو از دست بدم با من بیا دخترم. برای بریزیز برای خیال منم در میدان نبرد آسوده باشه بیا تردید نکن دخترم با من بیا همین الان به تو رو آبر میگردیم خواهش میکنم باشه بدا باشه بریسیس همراه پدرش به تروا برگشت چند روزی گذشت تا اینکه سپاهیان یونان از نفوذ به داخل قلعه ناامید شدند. اونا همه ی راه ها رو برای ورود به قلعه امتحان کردند، اما موفق نشدند وارد قلعه بشن سربازان خسته شده ناشه آزقامون داره میشه نشه ما هنوز نتونستیم وارد اون قلعه چی بشه زمانی که وارد قله نشیم نمیتونیم سپاهت رو آر رو به تو کامل شکست بدیم و بانو هلن با به خودمون ببریم من هم اندازه تو توسلام یه مجیسا اما هیچ فکری به ذهنم نمیرسه من مرد جنگی هم. همیشه تراحی حمله با تو بود این تویی که باید راهو به ما نشون بدی این فکرام به جایی نمیرسه. نمیدونم از چه راهی باید نفوذ کنیم که سربازان تو توا سر راهمون سبز نشه اینطور که به نظر میرسه آید غیر از راه نظامی یه راه دیگر رو انتخاب کنیم و دیسه آید یه نقشه دیگه ای برای ورود به قلعه بکشیم یه نقشه که سربازان توها رو قافل گیر کنه میدونم آشیل، آشل می اما چه نحشه ای می نقشه تو, تو چی گفتی؟ گفتم یه نقشه غیر نظامی که سربازان توها رو قافل گیر کنه آره آره یه نقشه غیر نظامی همین آشیل، همینه چیزی به رسید؟ آره، آره. چی تو سر ما به عقب برمیگردیم و یه اسب چوبی بزرگ می‌سازیم ماشه. خوب، فضای داخلی اسب خالیه و ما میتونیم تمامی سربازانمون رو داخل اسب جا کنیم. خوب. نیمه های شب وقتی همه جا تاریکه اسب و مقابل قلعه میاریم و بعدم همه سربازان یونان داخل اسب مستقر میشن خوب. هوا که روشن شد فرماندهان تورها اسب چوبی رو میبینن که مقابل قلعه است در حالی که هیچ سرباز یونانی اونجا نیست بعد هم همونا با دستام خودشون اسب به قلعه میبرن و ما به راحتی وارد قلعه میشیم درسته درسته شد درسته خدای من از همین الان میتونم پیروزی اون رو تصور خب به نظر من بهتر وقت و تلف نکنیم و بازار رو به عقب هدایت کنیم. ساخت اسب چوبی به این بزرگی چند روزی وقت میدیم. همینطوره باشه. من همین الان میرم با افسران سپاهمون صحبت کنم. تا یه ساعت دیگه همه باید برای ساختن اسب چوبی آماده بشن. از لحظه به بعد سپاهیان یونان برای ساختن اسب چوبی دست به کار شدند. اسب چوبی تا قبل از تاریک شدن هوا آماده شد سربازان یونانی عصبو تا مقابل قلعه پیش بردن و خودشون در داخل اسب مستقر شدند. با روشن شدن هوا سپاهیان تروها اسب چوبی رو مقابل قلعه دیدن اونا باورشون شده بود که شاه آگامنون و سربازانش شکست و پذیرفتند و به یونان برگشتند. به همین دلیل هم و به داخل قلعه بردند و با ورود اسب به داخل قلعه سپاهیان یونان از عصب بیرون اومدن و نبرد شروع شد در نهایت یونانیان تروعا رو به آتش کشیدن و در این نبرد پیروز شدند به نوازید خونیا گران به سرود پیروزی سپاه یونان را در دل دشمن به خدای من نگاه کن ببین ما کجایی ما در دل قلعه کی فکرشو رو میکرد که بتونیم وارده این قلعه بشیم و پیروزیمون رو جشن بگیریم از آشیل تشکر کنیم اون بود که دا... راستی آشیل کجاست ا... تا همین چند دقیقه پیش اینجا بود آشیل آشیل من اینجا مودیسه <تصفح> چیه به نظر میاد از این پیروزی خوشحال نیستی کدوم سرباز یونانی رو میشناسی که از این پیروزی خوشحال نباشه بایست؟ پس چرا شاد نیستی؟ چرا با نوای خونیاگران سرود پیروزی نمیخونیم؟ برای اینکه سرود دیگه ای تو سرم نجمع بکنه چه سرودی؟ سرود عشق خدایم آشق شدن در میدان نبرد چقدر باشکوهه حالا میشه بگه اون چیزه خوشبخت کیه که در چون این لحظات پرفتخاری دست از سر دلت بر نمیداره؟ دوشیزه بریسیز بریسیز؟ خاهره ایک تو؟ خاهره ایک تو؟ چیه؟ نمیشه یه سرباز عاشق دختر دشمنش بشه؟ چرا؟ چرا؟ قوانین عشق کاری به قوانین جنگین نداره عاشق نمیدونم نمیدونم این چه کار من مکنم دنبال عشق رفتارشه؟ ایش مثل یک ای غزال تیزپا در حال فراره و تو باید اونو به دام نزید هنی <تصفيق> هنی میکی برم دنبال بروسیست آره آره برو دنبالش اون الان با پدر شاحتیریان و برادرش پاریس بیرون از قلبس برو و ازش بخواه که تا عبد کنارش باشه ممنونم ممنونم عدیسی <تصفيق> ممنونم <تص> <تص> با پیروزی عشق باورم نمیشد باورم نمیشد دوباره بتونم ببینم منم باورم نمیشه آشیل چطوری تونستی خودتو به اینجا برسونی؟ عشق تو به همجرعت و قدرت داد خیلی نگرانت بودم فکر میکردم کشته شدی من فقط در یک حالت میبیرم برسیس. منظور چیه؟ من یک روی دنم برسیس. دیر در هیچ نقطه ای از بدن من نمیکنه نمی جز یک نخته کدون نخته؟ هاشنه من تنها جایی از بدنم که روی این نیست و میتونه باعث مرگم بشه هاشنه منه برای همینم از کتاب حال من در هیچ نبردی زخمی نشدم این خیلی خوبه آشیر چقدر خوشحالم که به دیدنم اومدی من فقط برای دیدنت به اینجا اومدم بعدم تو رو با خودم ببرم با من بیا بریزیز بیا به یونان بریم و تا ابد کنال هم زندگی کن نمیدونم میتونم هم روش بیام یا نه چرا نمیتونی من تو هم دیگر رو دوست داریم میخواییم با هم استواج کنیم اگه لازم بشه من تو رو از شاه پیریم خواستگاری میکنم فکر میکنی پدرم با ازدواج ما بفقت میکنه من لطفه بزرگی در حق پیلالت کردم بریسیس وقتی ازم خواست جنازه یک رو بهش بدم هیچ مقاومتی نکردم شما مردان جنگی خیلی زود گذشته فراموش فرموش میکنی و کینه های قدیمی رو به یاد میاری پدرم از تو و سپاه یونان کینه به دلداره آشی پاریسم همینطور آتش انتقام و میشه در چشمانش دید این طبیعیه. ولی هیچ کلوم از مراقب باش چی چی خدا نهانتت کنه باید برگرد برنگ شد به پشنه من، تیرسه نه نه تو نباید بمیریوشل خواهش میکنم برگرد من کمکت میکنم باید باید سبر از سدرشی پولنشی من اشمانه تو باز کن کنم تشمانه دو باز کن اشن. اشن. اشن. اشن. پاریس با زدن تیر به پاشنه آشیل اونو به قتل رسند سپاهیان یونان به انتقام خون آشیل پاریسو کشتن پاریس در آتش جنگی که خودش افروخته بود سوخت. تروعا سقوط کرد و در نهایت هیچ شاه و شاهزادهی باقی نموند تا بر سرزمین تروعا حکومت کنه بله دوستان این هم از افسانه آشیل که سراسر نبرد بود و عشق عشقی که در دل نبرد جان گرفت اما به سرانجام نرسید یک افسانه یونانی که امیدواریم از شنیدن آن لذت برده باشین آشیل. تنظیم برای رادیو از سهیلا خدادادی بازیگران به ترتیب اجرا محروخ افسلی مهدی تهماسبی، فریدون مهرابی نورالدین جوادیان فریبا طاهری احمد گنجی کارگردان ایوب آقاخانی، افکتور نازنین حسنکون صدابردار حیدر صفتری تهیه کننده زهرا عبدالله زاده رنگی از زندگی افسان زندگیتون دلنشین و مانا تا افثانی دیگر به